اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برائة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم الى الذين عهتتم من المشرکین پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. این اعلام بیزاری از سوی خدا و پیام بر او به کسانی از مشرکان است که با آنها عهد بستید فسیحوا فی الارض اربعه اشهر واعلموا واعلموا انکم غیر معجز الله وأن الله مخزل کافرین با این حال چهار ماه مهلت دارید که آزادانه در زمین سیر کنید و هر جا می خواهید بروید و بیندیشید و بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از قدرت او فرار کنید و بدانید خداوند خار کافران است. و اذان من الله و رسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم و, انكم غير و این تولیتم فعلمو انکم غیر معجز الله و بشیر الذین کفروا به و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر روز عید قربان که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند با این حال اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر سرپیچی نمایید بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهروا ولم یظاهروا علیكم احدا فأتموا الیهم عهدهم إلی مدتهم إن الله یحب المتقین مگر كسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند و اهدی را بر ضد شما تقویت ننمودند یمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمارید زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد و این دوبو و اقام مصالت دوعد و ذکت فخاللو سبیله این الله غافور اما وقتی ماه های حرام پایان گرفت مشرکان را هرجا یافتید به قتل برسانید و آنها را ثیر سازید و محاصره کنید و در هر کمیگاه بر سر راه آنها بنشینید. هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکاس را بپردازند آنها را رها سازید زیرا خداوند آمور زنده و مهربان است و این احد من المشرکین استجارک فأجره حتی فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد به او پناهده تا سخن خدا را بشنود و در آن بیندیشد سپس او را به محل امنش برسان چرا که آنها گروهی ناآگاهند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 چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود در حالی که آنها هموار آماده شکستن پیمانشان هستند مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید و پیمان خود را محترم شمردند تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفاداری کنید که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. کیف و ان یظهروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا هو ولا ذمه یرضونکم بافواههم وتذاق قلوبهم واكثرهم فاسقون. چگونه پیمان مشرکان ارزش دارد؟ در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه ملاحظه خیشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را شما را با زبان خود خوشنود می کنند ولی دلهایشان عباد دارد و بیشتر آنها فرمان بردار نیستند اشترو بی آیات الله ثمنا قلیلا فصدو عن انهم ساء ما كانوا آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند و مردم را از راه او باز داشتند آنها اعمال بدی انجام میدادند لا يرقمون في مؤمن إلا ولا ذمه واولائك هم المعتدون نه تنها درباره شما درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خیاوندگی و پیمان را نمی کنند و آنها همان تجاوزکارانند فین تاموا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکات فاخوانكم فا في الدين ونفصل الایات لقوم يعلمون ولی اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند برادر دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که میدانند و می اندیشند شرح می دهیم و ثو ایمانهم من بعد عهدیم وطعنو فی دینكم فقاتلو فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون و اگر پیمان های خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند با پیشوایان کفر پیکار کنید چرا که آنها پیمانی ندارند شاید با شدت عمل دست بردارند الا دون قاتيلون قوما نكثوا ايمالهم وهم وهم با اخراج الرسول وهم هم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیام برگرفتند پیکار نمیکنید در حالی که آنها نخستین بار پیکار با شما را آغاز کردند آیا از آنها می ترسید؟ با اینکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید. قاتلوهم یعذیبهم الله بی ایدیکم و یخزیهم و ینصرکم صدور قوم مؤمنین با آنها پیکار کنید که خداوند آنان را به دست شما مجازات میکند و آنان را رسوا می و سینه گروهی از مؤمنان را شفا میبخشد. و بر قلب آنها مرهم می‌نهد ویذهب یذهب غیظ قلوبهم و الله علی من یشاء والله علیم حکیم و خشم دلهای آنان را از میان میبرد و خدا توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند می‌پذیرد و خداوند داناب و است أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون. آیه گمان کردید. که به حال خود رها میشوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خیش انتخاب ننمودند از دیگران مشخص نساخته است؟ باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد و خداوند به آنچه عمل میکنید آگاه است؟ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدین على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی میدهند آنها اعمالشان نابود و بی ارزش شده و در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند اینما یعمر مساجد الله من آمن من آمن بالله واليوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و الله فعسا اولائی که این من مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد امید است چون این گروهی از هدایت یافتگان باشند اجعلتم سقایت الحج و عبارت المسجد الحرام کمن كمن آمن بالله واليوم الاخر و في سبيل الله لا يستوون عند الله و لا یهدی القوم الظالمین آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند عمل کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟ این دو نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم أعظم درجه اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند. یوبشیروهم ربهم برحمتن من و رضوان ورضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم پروردگارشان آنها را به رحمتی از ناحیه خود و رضایت خیش و باغهایی از بهشت بشارت می که در آن نعمتهای جاودانه دارند خالدین فیها ابدا این الله عنده اجر عظیم همواره و تا ابد در این باخها و در میان این نعمت ها خواهند بود زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است يا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اخوانكم اولیاء استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هم ای کسانی که ایمان آورده هرگاه پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح دهند آنها را ولی خود قرار ندهید و کسانی از شما که آنان را ولی خود قرار دهند ستمگرند گرند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 وتجارت تخشون كسادها ومساكين تربونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و تاایفه شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کسات شدنش میترسید و خانههایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیام برش و جهاد در راهش محبوبتر است در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمان بردار را هدایت نمی کند. لقد نصركم الله في مواطن کثيرتی و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغنی عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم ثم وليتم مدبرين خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و بر دشمن پیروز شدید و در روز حنین نیز یاری نمود در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مقرور ساخت ولی این فزونی جمعیت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد سپس پشت به دشمن کرده فرار نمودید ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا و جنودا لم تروها وعذب الذین کفرون جزاء الكافرین سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیام برش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرها ای فرستاد که شما نمی و کافران را مجازات کرد و این است کافران. ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما يشاء والله رافع الرحيم. سپس خداوند بعد از آن توبه ی هر کس را بخواهد و شایسته بداند میپذیرد و خداوند آمرزنده زنده و مهربان است. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف مِنْ الله من فضله إن شاء این الله علیم ای کسانی که ایمان آورده اید مشرکان ناپاکند پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند. و اگر از فقر می خداوند هرگاه بخواهد شما را به بی کرمش بینیاز می سازد و از راه دیگر جبران می کند خداوند دانا و حکیم است. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزيه عينا وهم صاغرون با کسانی از اهل کتاب که به خدا و به روز جزا ایمان دارند و نه آنچرا خدا و رسولش تحریم کرده حرام میشه مرند و نه آین حق را میپذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضو و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان لا يؤفكون يهود <تصفيق> گفتند او پسر خداست و نصارا گفتند مسیح پسر خداست این سخنی است که با زبان خود میگویند که همانند گفتار کافران پیشین است خدا آنان را بکشد چگونه از حق انحراف مییابند اتخاذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح بن مریم والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند و همچنین مسیح فرزند مریم را در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که معبودی جزو نیست بپرستند او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار میدهند یریدون این یطفیون نور الله بی افواهیم و الله. و عدم الله إلا أن نوره كره الكافرون. آنها میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ولی خدا جز این نمیخواهد که نور خود را کامل کند هرچند کافران ناخشنود باشند. هو أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ او کسیست که رسول شرابه و آینه حق فرستاد تا آن را بر همه آین غالب قالب گرداند هرچند مشرکان کراحت داشته باشند یا ایوها الذين آمنوا این کثیرا من الاحبار و لا لیاقلون لا ياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب وَلَا ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب اليم که ایمان آورده اید بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان اموال مردم را به باطل میخورند و آنان را از راه خدا باز میدارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره و پنهان می سازند و در راه خدا انفاق نمیکنند به مجازات دردناکی بشارت ده. يوم يثم عليها في نار جهنم فتكوى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لتانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون در آن روز چه آن را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ میکنند و به آنها میگویند این همان چیزی است که برای خود اندوختید پس بچشید چیزی را که برای خود میاندختید این ن الشهور عند الله نهشان را شمهران فیکی الله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 قات مشریکیكك كماون كما قالو نکمك وعلممون أن الله مع المتقم تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب الهی از آن روز که آسمان ها و زمین را آفریده. دوازده ماه است که چهار ماه از آن ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع می باشد این آیین ثابت و پا جای الهی است بنابراین در این ماه ها به خود ستم نکنید و از هر گونه خونریزی بپرهیزید و به هنگام نبرد با مشرکان دست جمعی پیکار کنید همان گونه که آنها دست جمعی با شما پیکار میکنند، و بدانید خداوند با پرهیزگاران است إن من نسئ زیادته في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدی القوم الكافرین نسیع جابجا كردن و تأخیر ماههای حرام افزایشی در كفر مشركان است كه با آن كافران گمراه میشوند یک سال آن را حلال و سال دیگر آن را حرام میکنند تا به مقدار ماهایی که خداوند تحریم کرده بشود و عدد چهار ماه به پندارشان تکمیل گردد و به این ترتیب آن که را خدا حرام کرده حلال بشمرند اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمیکنند. يا أيها الذين آمنوا ما لكم, ما لكم اذا قيل لكم فروا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع في إلا قلیل. ای کسانی که ایمان آورده اید چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید با اینکه که متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست الا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تبرره شيئا والله على كل شيء قدير اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید شما را مجازات درد میکند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار میدهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست اِلَّا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ الله اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثْنَيْنِ هُمَا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 و الله, و الله هی العلیه والله عزیز حکیم اگر او را یاری نکنید خداوند او را یاری کرد و در مشکل ترین ساعات او را تنها نگذاشت آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه نداشت در آن هنگام که آن دو در قار بودند و او به همراه خود می گفت قم مخور خدا با ماست در این موقع خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد و با که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و گفتار و هدف کافران را پایین قرار داد و آنها را با شکست مواجه ساخت و سخن خدا و آین او بالا و پیروز است و خداوند عزیز و حکیم است این فرو خفافا و ثقال و جاهدو و جاهدو بی و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لكم این كنتم تعلمون همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید سبک باشید یا سنگین بار و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید. این برای شما بهتر است اگر بدانید لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لت ولكن بعودت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون اما گروهی از آنها چنانند اگر أگر غنایمی نزدیک و در دسترس و سفری آسان باشد به تمع دنیا از تو پیروی میکنند ولی اکنون که برای میدان تبوک راه بر آنها دور و پر مشقت است سرباز میکنند و به زودی به خدا سوگند یاد میکنند که اگر توانایی داشتیم همراه شما حرکت میکردیم. آنها با این اعمال و این دروغها در واقع خود را حلاک میکنند. و خداوند میداند آنها دروغگو هستند اصل الله عنك كلمه اذن تلهم حتى, حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم خداوند تو را بخشید چرا پیش از آنکه راستگویان و دروغگویان را بشناسی به آنها اجازه دادی خوب بود صبر کردی تا هر دو گروه خود را نشان دهند لا یستاذنک الذین يؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا أي یجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله علیم بالمتقین آنها که به خدا و روز جزا ایمان دارند هیچگاه برای ترک جهاد در راه خدا با اموال و جانهایشان از تو اجازه نمیگیرند و خداوند پرهیزگاران را میشناسد انما یستأذنك الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ورتابت, ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون تنها کسانی از تو اجازه این کار را میگیرند که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان با شک و تردید آمیخته است آنها در تردید خود سرگردانند ولو ارادو الخروج لأعدو له عدتا ولكن کره اللهم بعاثهم فثبطهم فثبطهم مع اگر آنها راست میگفتند و اراده داشتند که به سوی میدان جهاد خارج شوند وسیله ای برای آن فراهم میساختند، ولی خدا از حرکت آنها کراحت داشت از این رو توفیقش را از آنان سلب کرد و آنها را از جهاد باز داشت و به آنان گفته شد با قاعدین کودکان و پیران و بیماران بنشینید لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا أوضعوا ولا أوضعوا و لا اضع و لا اضع خلالكم يدغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم و الله اگر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد خارج میشدند جز اضطراب و تردید چیزی بر شما نمیافزودند و به سرعت در بین شما به فتن انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق میپرداختند و در میان شما افرادی سست و ضعیف هستند که به سخنان آنها کاملا گوج فرامیدهند و خداوند ظالمان را میشناسد لقد متغول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون آنها پیش از این نیز در پی فتنه انگیزی بودند و کارها را بر تو دگرگون ساختند و به هم ریختند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت و پیروز شدید در حالی که آنها کراحت داشتند و من من یقول ولا تفتنی الاف في الفتنه سقطوا وان جهنم لم محيطه بعضی از آنها میگویند به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیافتند آگاه باشید آنها همکنون در گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده اند. این تصیب که حسنت تسوهم و این تصیب که قد اخذنا امرنا من قبل و وهم فرحون هرگاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می و اگر مصیبتی به تو رسد ما تصمیم خود را از پیش گرفته این و باز می‌گردند در حالی که خوشحالند. قلی صیبنا، ایلا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلی المؤمنون. بگو هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی‌دهد، مگر آن که برای ما نوشته و مقرر داشته است او مولا و سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند قل هل تر ونحن نتربص بكم أن يصیبكم الله بعذاب من عنده أو بأیدینا فتربصوا إنا معكم متربصون بگو آیا دربارهٔ ما جز یكی از دو را انتظار دارید یا پیروزی یا شهادت ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از سوی خودش در آن جهان به شما برساند یا در این جهان به دست ما مجازات شوید اکنون که چنین است، شما انتظار بکشید ما هم با شما انتظار میکشیم قل طوعا او کرها انكم كنتم قوما فاسقین بگو انفاق کنید خواه از روی میل باشد یا اکراه هرگز از شما پذیرفته نمی شود چرا که شما قوم فاسقی بودید و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا هیچ چیز مانع قبول انفاق های آنها نشد جز این که آنها به خدا و پیام برش کافر شدند و نماز به جان نمی آورند جز با کسالت و انفاق نمی کنند مگر با کراحت فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها في الحياة الدنیا فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم و فزونی اموال و اولاد آنها تو را در شگفتی فرو نبرد خدا میخواهد خواهد آنان را به وسیله آن در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان براید در حالی که کافرند ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون آنها به خدا سوگند میخورند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند ولی آنها گروهی هستند که میترسند و به خاطر ترس از فاش شدن اصرارشان دروغ میگویند لو یجیدون ملجا او مغارات او مدخلا ول لو الیه اگر پناهگاه یا قارها یا راهی در زیر زمین بیابند به سوی آن حرکت می کنند و با سرعت و شتاب فرار می کنند. ومنهم من یلمزك فی الصدقات فئن اعطا منها رضوا وئن لم یعطوا منها, منها إذا هم یسخطون و در میان آنها کسانی هستند که در تقسیم قنایم به تو خرده میگیرند اگر از آن قنایم سهمی به آنها داده شود راضی میشوند و اگر داد نشود خشم میگیرند خواه حق به آنها باشد یا نه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسب الله سيؤتين الله سیؤتین الله من فضله و رسوله انا اینا الله راغبون در حالی که اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است و به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما می ما تنها رزای او را می تلبیم برای آنها بهتر است. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله فریضه من الله والله علیم حکیم زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنان است که برای جمع آوری آن زحمت می‌کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و ووامان دگان راه این یک فریزه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است و من الذین الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذ قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمه للذين آمنوا منكم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول الله لهم عَذَابٌ علیم. از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او آدم است. بگو خوشباور بودن او به نفع شماست ولی بدانید او به خدا ایمان دارد و تنها مؤمنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند و آنها که رسول خدا را آزار می دهند عذاب درد دارند یحلفون بالله لكم لیردوکم والله و رسوله احق ان یردوه این كانوا, كانوا مؤمنین آنها برای شما به خدا سویند یاد می کنند تا شما را راضی سازند در حالی که شایسته تر این است که خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان دارند علم یعلمو نه من یحادی لله و رسوله فان له فان لهونا رجها لما خالدا فيها ذلك الخزي العظيم آیا نمیدانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند برای او آتش دوزخ است جاودانه در آن می ماند؟ این همان رسوایی بزرگ است يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون از آن بین دارند که سوره ای بر ضد آنها نازل گردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد بگو استهزا کنید خداوند آنچه را از آن بیم دارید آشکار می‌سازد ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل و بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون و اگر از آنها بپرسید چرا این اعمال خلاف را انجام دادید میگویند ما بازی و شوخی میکردیم بگو آیا خدا و آیات او و ورش را مسخره میکردید لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم ان عفو عن طائفه منكم نعذب نوعی بطائفه بان لهم كانوا مجرمین بگو عذرخواهی نکنید که بیهوده است چرا که شما پس از ایمان آوردن کافر شدید اگر گروهی از شما را به خاطر توبه مورد عفو قرار دهیم گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد زیرا مجرم بودند المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروهند آنها امر به کرد و نهی از معروف میکنند و دستهایشان را از انفاق و بخشش میبندند خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را فراموش کرد و رحمتش را از آنها قطع نمود به یقین منافقان همان فاسقانند وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم خدابند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتش دوزخ داده جاودانه در آن خواهند ماند همان برای آنها کافی است و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی برای آنهاست که الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه و اموالا وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع الذين من قبلكم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطم كالذي خاضوا اولئی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة و هم الخاسرون شما منافقان همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند و راه نفاق پیمودند بلکه آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود آنها از بهره خود از مواهب الهی در راه گناه و حوص استفاده کردند شما نیز از بهره خود در این راه استفاده کردید همانگونه که آنها استفاده کردند شما در کفر و نفاق و استهزای مؤمنان فرو رفتید همانگونه که آنها فرو رفتند ولی سرانجام اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد وأنهم زیان کارانند ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا انفسهم يظلمون آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند به آنان نرسیده است قوم نوح و عاد و سمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین قوم شعیب و شهرهای زیر و رو شده قوم لوط پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند ولی نفذی رفتند خداوند به آنها ستم نکرد اما خودشان بر خیشتن ستم میکردند. بعضهم اولیاء بعض مردان بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ولی و یار و یاور یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر میکنند، نماز را برپا می دارند، و زکات را می پردازند، و خدا و رسولش را اطاعت می کنند، به زودی خدا آنان را مورد رحمت خیش قرار میدهد. دهد، خداوند توانا و حکیم است،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 خداوند به مردان و زنان با ایمان هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند ماند و های پاکیزه‌ای در بهشتهای جاودان نصیب آنها ساخته و خوشنودی و رضای خدا از همه اینها برتر است و پیروزی بزرگ همین است يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر جایگاهشان جهنم است و چه بد نوشتی است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 وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلَيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ به خدا سوگند میخورند که در غیاب پیامبر سخنان نادرست نگفتهاند در حالی که قطعا سخنان کفرامیز گفته و پس از اسلام آوردنشان کافر شده اند و تصمیم به کار خطرناکی گرفتند که به آن نرسیدند آنها فقط از این انتقام میگیرند که خداوند و رسولش آنان را به فضل و کرم خود بی نیاز ساختند با این حال اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی گردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد و در سراسر زمین نه ولی دارند و نه یاوری و منهم من, من الله آتانا من فضله لنصدقند ولنکونند من الصالحین بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از صالحان و شاکران خواهیم بود فلما آتاهم من فضله بخلو به بخلو به و تولو و هم معرضون اما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى يوم یلقونه بما بی ما الله ما, وعدوه بی ما این عمل روح نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت این به خاطر آن است که از پیمان الهی تخلف جستند و به خاطر آن است که دروغ میگفتند الم یعلموا أن الله یعلم سرهم ونجواهم ون الله علام الغیوب آیا نمیدانستند که خداوند اسرار و سخنان درگوشی آنها را میداند و خداوند دانای همهٔ غیبها و امور پنهانی است الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم مؤمنان <تصفيق> در صدقاتشان عیب جویی میکنند و کسانی را که برای انفاق در راه خدا جز به مقدار ناچیز توانایی خود دسترسی ندارند مسخره می خدا آنها را مسخره میکند و کیفر استهزا کنندگان را به آنها میدهد و برای آنها عذاب دغناک است استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم ان تستغفر لهم, لهم سبعین مره فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی حتی اگر هفتاد بار برای آنها استغفار کنی هرگز خدا آنها را نمی آمرزد چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا بازماندگان از جنگ تبوک از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر و به مؤمنان گفتند در این گرما به سوی میدان حرکت نکنید به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است اگر می دانستند فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْخُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يكسبون. از این رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگیریند چرا که آتش جهنم در انتظارشان است این جزای کارها است که انجام می دادند فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْ كَلِلْخُرُوجِ فَقُلْ فَقُلْ لَنْ تَخُرُجُو مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُو مَعِيَ عَدُوًا اینکم رضیتون بالقعود اول مره فقعودو مع الخالفین هرگاه خداوند تو را به سوی گروهی از آنان بازگرداند و از تو اجازه خروج به سوی میدان جهاد بخواهند بگو هیچگاه با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید شما نخستین بار به کنارگیری راضی شدید اكنون نیز با متخلفان بمانید ولا تصل على أحد منهم ماك ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون هرگز بر مرقه هیچ یک از آنان نماز نخواند و بر کنار قبرش برای دعا و طلب آمرزش نئیست. چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند. و إن لما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون مبادا اموال و فرزندانشان مایه شگفتی تو گردند این برای آنها نعمت نیست بلکه خدا میخواهد آنها را به این وسیله در دنیا عذاب کند و جانشان براید در حالی که کافرند واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولط الطول منهم وقالوا وقالوا ثرنا لكم مع القاعدين و هنگامی که سوره نازل شود و به آنان دستور دهد که به خدا ایمان بیاورید و همراه پیام برش جهاد کنید. افرادی از آنها گروه منافقان که توانایی دارند از تو اجازه میخواهند و میگویند بگذار ما با قاعدین آنها که از جهاد معافند باشیم. راضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قوله بهم فهم لا يفقهون اري انها شدند که با بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر نهاده شده از این رو چیزی نمیفهمند لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان جهاد کردند و همه نیکی ها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند اعد الله لهم جنات تجری من تحتی الانهار خالدین خالدین فیها ذلك الفوز العظیم خداوند برای آنها هایی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند بود و این است رستگاری و پیروزی بزرگ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم و عذر آورندگان از اعراب نزد تو آمدند که به آنها اجازه عدم شرکت در جهاد داده شود و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند بدون هیچ عذری در خانه خود نشستند به زودی به کسانی از آنها که مخالفت کردند و معذور نبودند عذاب دردناکی خواهد رسید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 و آنها که وسیله ای برای انفاق در راه جهاد ندارند ایرادی نیست که در میدان جنگ شرکت نجییند هرگاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند و از آنچه در توان دارند موذیق ننمایند بر نیکوکاران راه معاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا و تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی برای جهاد سوار کنی گفتی مرکبی که شما را بر آن سوار کنم ندارم از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه عشق بار بود زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند و با آن به میدان بروند انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون راه مؤاخذه تنها بروی کسانی باز است که از تو اجازه میخواهند در حالی که توانگرند و امکانات کافی برای جهاد دارند آنها راضی شدند که با بازماندگان بمانند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده به همین جهت چیزی نمیدانند. یعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهادت فينبئكم،, فينبئكم بما كنتم تعملون هنگامی که به سوی آنها که از جهاد تخلف کردند بازگردید از شما عذر خواهی می کنند. بگو اوزر خواهی نکنید ما هرگز سخن شما را باور نخواهیم کرد چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا و رسولش اعمال شما را میبینند سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگشت داده میشوید و او شما را به آنچه انجام میدادید آگاه میکند و جزا میدهد. یحلفون بالله لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون هنگامی که به سوی آنان بازگردید برای شما به خدا سوگند یاد می‌کنند تا از آنها اعراض و صرف نظر کنید از آنها اعراض کنید و روی بگردانید چرا که پلیدند و جایگاهشان دوزخ است به کیفر اعمالی که انجام می‌دادند یحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين برای شما قسم یاد میکنند تا از آنها راضی شوید اگر شما از آنها راضی شوید خداوند هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم بادي نشینان عرب كفر و نفاقشان شدید تر است و به نا آگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیام برش نازل کرده سزا ترند و خداوند داناو و حکیم است و من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويترصد بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم گروهی از این اعراب بادی نشین چیزی را که در راه خدا انفاق می‌کنند قرامت محسوب می‌دارند و انتظار حوادث دردناکی برای شما می‌کشند. کشند. حوادث دردناک برای خود آنهاست و خداوند شنوا و داناست. ومن الأعراب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما ينفق طربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. این الله غفور رحیم گروهی دیگر از عربهای بادی نشین به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و آنچه را انفاق میکنند کنند مایه تقرب به خدا و دعای پیام برمی آگاه باشید اینها مایه تقرب آنهاست خداوند به زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است والسابقون السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم والذین اتبعوهم بی احسان رضی الله عنهم و عنه رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعدلهم و جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم پیشگامان نخستین از مهاجرین آنصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و باخهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش است جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ. و من من حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم و از میان أعراب بادی نشین که اطراف شما هستند جمعی منافقند و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به نفاق پایبندند تو آنها را نمیشناسی، ولی ما آنها را میشناسیم. به زودی آنها را دو بار مجازات میکنیم. مجازاتی با رسوایی در دنیا و مجازاتی به هنگام مرگ سپس به سوی مجازات بزرگی در قیامت فرستاده میشوند. و آخرون اعترفو بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا و آخر سیئا الله ان يتوب عليهم این الله غفور رحیم و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند امید میرود که خداوند توبه آنها را بپذیرد به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم از اموال آنها صدقی به انوان زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی و به هنگام گرفتن زکات به آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست. لم يعلم أن الله هو يغبل الدوب عنبادي وأخذ صقات وأخذ صدقاات وَأَ الله هوّاب هو محيم آیا نمیدانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش میپذیرد و صدقات را میگیرد، و خداوند به پذیر و مهربان است و قول اعملون الله عملكم ورسوله والمؤمنون و ستردون الى عالم الغیب والشهادت فیونبئوكم بما کنتم تعملون بگو عمل کنید خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می بینند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید و شما را به آنچه عمل می کردید خبر می دهد و آخرون مرجون لی الله اما یعذبهم و اما یتوب عليهم والله علیم حکیم و گروهی دیگر به فرمان خدا واگذار شده اند و کارشان با خداست یا آنها را مجازات می‌کند و یا توبه آنان را می‌پذیرد هر طور که شایسته باشند و خداوند دانا و حکیم است والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا و تفریقا بین المؤمنین و لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ليحلفن این اردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون گروهی دیگر از آنها کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان رساندن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرق افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیام برش مبارزه کرده بود آنها سوگند یاد می کنند که جز نیکی و خدمت نظری نداشتیم اما خداوند گواهی میدهد که آنها دروغگو هستند لا تقم فيه ابدا لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين هرجس در آن مسجد به عبادت نئست ان مسجدي که از روز نخست بر پایه‌ی تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به عبادت به ایستی. در آن مردانی هستند که دوست می‌دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله ورضوان خیر خیرون امن اسس بنيانه علا شفا علا شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خوشنودی او بنا کرده بهتر است یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنانموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو میریزد و خداوند گروه ستمگران همگران را هدایت نمی کند. لا یزال بنیانهم الذی بنو ریبتاً فی قلوبهم إلا،, الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم اما این بنایی را که آنها ساختند همواره به صورت یک وسیله شک و تردید در دلهایشان باقی میماند مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند وگرنه هرگز از دل آنها بیرون نمیرود و خداوند دان آبو حكیم ازد این اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن او فابقدیم من الله فسته ب ش رو ب بعك الذي بدبی وذللك هو الفوز العظیم خداوند از مؤمنان جنها و عمالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد به اینگونه که در راه خدا پیکار میکنند میکشند و کشته میشوند این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است اكنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید و این است آن پیروزی بزرگه الذائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله و بشیر المؤمنین توب کنندگان عبادتکاران سپاس گویان سیاحت کنندگان کنندگان سجد آوران آمران به معروف نحی کنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهای الهی مؤمنان حقیقیند و بشارت ده به این چونین مؤمنان ما کان للنبي والذين يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو قربى من بعد ما تبين لهم الجحيم برای پیامبر و مؤمنان شایسته نبود که برای مشرکان از خداوند طلب آمرزش کنند هرچند از نزدیکانشان باشند آن هم پس از آن که بر آنها روشن شد که این گروه اهل دوزخند و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه إلا،, الا عن موعدت وعدها ایاه فلمه فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ واستغفار ابراهيم برای پدرش فقط به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود تا وی را به سوی ایمان جذب کند اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست به یقین ابراهیم مهربان و بردبار بود وما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی حتی یبین لهم ما یتقون این الله بكل شيء علیم چنان نیست که خداوند قومی را پس از آنکه آنها را هدایت کرد و ایمان آوردند گمراه و مجازات کند مگر آنکه اموری را که باید از آن بپرهیزند برای آنان بیان نماید و آنها مخالفت کنند زیرا خداوند به هر چیزی داناست این الله له ملك السماوات والارض یحیی و و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر حکومت آسمان ها و زمین تنها ازان خداست زنده می کند و میمیراند و جز خدا ولی و یاوری ندارید لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم اِنَّهُمْ خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار که در زمان اسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود بعد از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ باز کردند. سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است. و على الثلاثة الذین خلفوا حتى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و والظن ان لا ملجأ من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم و همچنین آن سه نفر که از شرکت در جنگ تبوک باز ماندند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد حتی در وجود خیش جایی برای خود نمی یافتند در آن هنگام دانستند پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود و به آنان توفیق داد تا توبه کنند خداوند بسیار به پذیر و مهربان است <تصفيق> یا ای آمنوا الله و كونوا مع ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ غَمَوٌّ وَلَا نَصْبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْتَ أَيِّ يَعِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ ولا ينالون من عدو دليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين سزاوار نیست که اهل مدینه و بادی نشینانی که اطراف آنها هستند از رسول خدا تخلف جویند و برای حفظ جان خیش از جان او چشم میپوچند. این به خاطر آن است که هیچ تشنگی، خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمیرسد. و هیچ گامی که موجب خشم کافران میشود، بر نمیدارند. و ضربه ای از دشمن نمیخورند. مگر اینکه به خاطر آن عمل صالحی برای آنها نوشته میشود. ذرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا لیجزیهم الله احسن ما کنو یعملون و هیچ مال کوچک یا بزرگی را در این راه انفاق نمی کنند و هیچ سرزمینی را به سوی میدان جهاد و یا در بازگشت نمی مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش داد و مکن مؤمنونلییم فیروون کرد. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُونَ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُونَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ شایسته نیست مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند چرا از هر گروهی از آنان تایفه ای کوچ نمی کند و تایفه ای در مدینه بماند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بین دهند شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری کنند. يا ایوها الذین آمنوا قاتلوا الذین يلونكم من الکفار والیجدوا فیکم غلظه وعلموا ان الله مع المتقین ای کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که به شما نزدیک ترند پیکار کنید و دشمن دورتر شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند آنها باید در شما شدت و خشونت و قدرت احساس کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است و اذا ما انزلت فمنهم فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ و هنگامی که سور ای نازل می شود بعضی از آنان به دیگران میگویند این سور ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟ به آنها بگو، اما کسانی که ایمان آورده اند بر ایمانشان افزوده و آنها به فضل و رحمت الهی خوشحالند. و اما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فزادتهم فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ و اما آنها که در دلهایشان بیماری است پلیدی بر پلیدیشان افزوده و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند اولا يرون أن یفتنون يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا یتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آیا آنها نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزمایش می شوند؟ باز توبه نمی کنند و متذکر هم نمی گفتند و اذا ما انزلت سورت نظر بعضهم الى بعض هل هل يراكم من احد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بان لهم قوم لا یفقهون و هنگامی که سوره این نازل می شود بعضی از آنها منافقان به یکدیگر نگاه میکنند و میگویند آیا کسی شما را می بیند اگر از حضور پیام بر بیرون رویم کسی متوجه ما نمی شود، سپس منصرف می شوند و بیرون می روند. خداوند دلهایشان را از حق منصرف ساخته، چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند و بیدانشند، لقاد ج قم رسولم منن م فسیكم عزیزون عليه م عنتون عزیزون عليهه م روف رحیم به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است فئن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم اگر آنها از حق روی بگردانند نگران مباش بگو خداوند مرا کفایت می کند. هیچ معبودی جز او نیست بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است